برای این داستان سیاوشی میان آمدن پیش پیران و پیران قبل از اینکه شروع کنه به نالوزاری و اش گفتن که فرصت نیست برای این کار برای اینکه دخترم یعنی زن سیاوشم میکشنش فریگیستش و زودتر به داد پرست بعد اینجا دیده حکیم شروع میکنه که آمدن با همون گردان و عصب دروردن شدن به سرعت رفتن از آخر بیاورد پس پهلبان دست سوار آزموده جوان خود و گردونین فرشید ورد بر براورد ازان راه ناگاه گرد به دو روز و دو شب به درجه رسید راه نسبتاً دور بوده راه مرکز پیران خوتن و اونجاها بوده میگه اونجا از اونجا آمد به درگاه در نامور پر جفا پیشه دید, دید که دربار افراسی ها پر از مردان جفا پیشه هست فرید یعنی ستمکار و کسانی که کارشون خشونت و ایناست فریگیس رادی چون بیهوشان گرفته برا روزبانان کشان به چنگال هر یک یکی تیغ تیز درگاه برخواسته رست خیز همه دل پر از درد و دیده پرافت کردار بدگوهل افراسی ها که این هرگاریست با درد و بیم که اکنون فریگیس را به زنند و شود پا. شاهی تباه مرورا نخاند کسی نیست شاه همون گاه پیران بیامد چوب بعد کسی کش خرد بود گشتند شاد بکردن کسی آمده که حالا یک کاری انجام میده چو چشم گرامی به پیران رسید چود از خون دیده رو خشنافدید بازی که از یاران سیاوش گرامی چو چشم گرامی به پیران رسید چود از خون دیده رو خشنافدید به دو گفت با من چه بد ساختی چرا زنده ام باتش انداختی اینجا گرامی فکر کنم مرادش یعنی اسم خاصی از مرادش دختر افراسی ها فریگیسه که میگه که چیز به دو گفت من چه بد ساختی چرا زنده ام باتش انداختی ز در و به خاک همه جامعه بحلوی کرد چار به تا روزبانان درز فرمان زمانی به تابند سر اول این کارش این که از اجرای فرمان خودداری کنه تا برگرده بی آمد دمان پیش افراسیاب دل از درد خسته دو دیده فرا. به دو گفت شاها هنوشه بدی روان را به دیدار تومشه بدی چه آمده بد بر تو ای نیک خوی که آورد این اخترت آرزوی چرا بر دلت چیره شد خیره دیو ببرد از رخت شرم گیهان خدی؟ بکشتی سیاوخش را بیگنا به خاکن درانداختی نام و جا به ایران رسد زین بدی آگهی بر این تخت و بسا تاجداران ایران زمین که بالشگر هایند آیند پر درد و کین جهان آرمیده ز دست بدی شده آشکارا ره ایزدی فریبند دیوی ز دوزخ بجست بیامد دل شاه از اینسان بخست یکی زندگی داشت آرام می راحت می و درست می شدن دیوی آمد و خراب کرد امرو بران اهرمن نیز نفرین سزد که پیچید راید سوی راه بعد محصولش گرسی رزند پشیمان زین به روز دراز ببینی مانی به گرم و گداس گرم یعنی درد و اندو گداس هم گدافتن یعنی آب شدن و زوب شدن یعنی این قصه دراز داره پشت سر این کار خشیمان شویزین به روز دراز ببینی جمعانی به گرم و گداز ندانم که این گفتن فتز کیست آفریننده را را چیست کنون زو گذشتی به فرزند خیش رسیدی به تیمار پیبند خیش چه دیوانه از جای برخواستی چون این خیره بد را بیاراستی راستی جویت همانا فریگیست بخت نه اورنگ شاهی نه تاج و نه تخت میگه فرنگیس از تو نه شوهر میخواد نه تخت پادشاهی میخواد نه تاج و تخت میخواد بعدم هم یه بچی توشکم میشه تو الان اینو بکشید دو نفر رو کشتی تو درفشی نکن در جهان یعنی رسوا علم اولین چیز علم مثلا منی درفش نشانه است که زودتر از همه چشک اشخاص میفته بهش میفهمن که این دشکره داره میاد میگه تو خود تو مثلا علم رسوا نکن در دن پس از زندگی دوزخ آین بود اگر شاق روکن کند جان من برستد برا سوی ایوان من گریدون که اندیش زن کودک است همانا که این دردرنج اندکه هست به من تا جدا گردد از کالبد، بعد به پیش تارم به تو ساز بد که اگر ناراحتی از این بچه اون کار ساده است. چرا دختر تو چرا میکشی اینه بده من ببرم در کار خودم میگه دارم این دختر خودتوه بعد بچه رو که زایید بچه رو میارم هر کاری خواستی ما هم بخوان مادرشو چی خواهی به دو گفت از سان که گفتی به ساز گفت خیلی پنکار بکن مرا کردی از خون او بینیاز سپهدار پیران بدان شاد گشت. از اندیشه و از خم آزار کرشت بیا آمد به درگاه او را ببرد بس اینیز بر روزوانان شمرد. این شمردن و بر شمردن هر دوش به معنی در حقیقت بعد گفتن و انتخاب کردن و ایراد گرفتنه در این چندویت قبلی هم یک جو داریم که میگه که برش مورد مرز که به یک کسانی میگه که آمد و چیز کرد الان پیدا میکنم پیدا میگم پیدا کنم وقتی ما لایمونجی پیران که برو بیارن وقتی میخوام خان شهر بدم که قضیه چطور شده میگه بر اون فرش مردند یک سرصفو معمولا فرش مردن بیشتر موارد میاد برای کارهای با ایراد و کارهایی که از روی انتقاد میاد و همین هم الان که میخوان فصیح بنویسن و در می نویسن که فرش مرد بجای شمرد و متوجه نیستن این بیشتر جنبه بد داشته اغلب مواردی که به کار رفته و گاهی شمردن به من یه انتقاد کردم اینجا این بر شمرد این طرف چند بیت پیشتره این طرف هم باز همینجوری میگوید که بعد اینکه آمد فرنگیز رو آزاد کرد بس این بر روزبانان شمرد یعنی بد گفتون بیازار بردش به سوی ختم خروچان همه درگه و انجمن، چه آمد به ایوان ایوان بارها گفتن من این کاخره به گلشهر گفت گلچر اسم زن پیرانه که قبلا هم اسمش آمده تو این داستان چه آمد به ایوان به گلشهر گفت که این خوب رخ را به واید نهوف تو وقتی پیش این نام ورزی این هار بباش و بدارش وار بدارش این نگهتاری بکنه زید. بر این میز بگذاشت یک چند روز گران شد طریقی سگیتی پروز سنگیشت بعد محتار بعد زادانی که خاطرو از مادر شبی غیر ما پنهان شده به خوابن در اون مرغدام افتده چنان سالار پیران بخواب که همی بر افروخ دیزاфта سیاقوش بر شب تیری به دست و آواز گفتی نشایادت میشه است از این از این خواب نوچین سر آزاد کن ز فرجام گیتی یاد کن که روزی نواوین و جشن این نوع است شب سور آزاف به کیخوز هست میگه پیران خوابیده بود؟ کاپ که سیاه باش آمده پیران هم یه شمی دارن از آفتاق یه روشن بکنه بعدید سیاه باش پلی اون شمی تیغی به دستش که نخواب اینقدر بلنج شب زادن کیخوز و میره اینه که همینطوره یه سفعوت بلرزید در خاق خش ببیچید گل شهر خرشید فش به دو گفت پیران که برخیز و روب خیرتمند پیش فریگیز شو سیاه وقت شا دیده مکرون به خواب درخشانتر از برسپه رافتاب که گفتی مرا چند خسپی مپا به جشن جهاندار که خسرو باقی میراث رفت گلشهر تا پیش ما جدا گشته بودت پر ما شاه یکی وقتی گلشهر رسید به پلوی فریگیز فریگیز زایده بودی که و فاصله داشتم جای مستقلی لاغوت بهش دادن و بعدم کونه دکتر افراسی ها بوده لاغوتی کاب چیزی بشتن تا رسیدن به اون میگه جدا شده است. همی رفت گل شهر تا پیش ما جدا گشته بود از برای ماه شاه بدید و به شادی باز گشت همانگاه گیتی باز گشت بیامد به شادی به پیران بگفت که این نت به آین خور و ماه جوز یکی خرشیده یکی ماه مراد بچه است و مادرش میگه خیلی مخصوصش اینه که بچه خیلی خوب بود و سالم بود و زیبا بود و مادرش هم اونطور تو گویین یکی اندر این شگفتی ببین بزرگی و رای آفرین تو گویین نشاید جز از تاج را اگر جبشن و ترگ و تاراج را میگه به درد اونست از همین حالا معلومه که شاهد سپروت بی آمد بر شهریار بدید و بخندید و کردش نسار پولی چیزی جواهی کوپری نسار کرد برای او بدان والا و آن شاک و یار تو گفتی بر او برگزشته سال دروشت بوده که گفتم یکی بست یعنی که سال برگزشته ز محر سیابش دو دیده خراف همی کرد نفرین بر افراسی ها چون این گفت با نام بر انجمن که گرز این سخون بکسلت جان من نمانم که یازد بدیم شاه، چنگ مرا از سفارت به چنگ نه مهری از که خسرو در دلش افتاد و گفت که من اگر که افراسیاب منو به سهن سهنگم اندازه من نمیذارم که این شاه رو اذیت بکنه چون قبلا گفته بود که میارن وقتی که بچه همون چیزی بدان که به نمود خورشید تیغ به خاوان در آمد سر تین میق یعنی اعتراض بیدار شد سلطان سپاه همان اندر آمد به نزدیک شاه همین بود تا جای پردخت شد به نزدیک آن نام پردخت شد رجب افسیاپت خبر گشت که زایدم که چاره نداشت بدو گفت خورشید فش خورشید فش یعنی خورشید وش یعنی مست خورشید بدو گفت خورشید فش مهترا جهاندار و بیدار و احسنگرار. به دربر یکی بنده افزود دوش یه بنده به بندگان شما دیشب اضافه شد که گفتی برا مایدار است هوش مثل اینکه که از هوش سرمایی داره نماند خوبی به گیتی به کست تو گفتی که برگاه ماه هست و برست اگر تور را روز باز آمدی به دیدار رش نیاز آمدی میگه اگه تور جده علای اینا زنده میشد میخواست اینو ببینی فریدون گردست بویی به جار به فر رو به چهر رو به دست و به پای برای وان چنون کس نبیند نگار به دو تازه شد فره شهریار از اندیشه بد بپرداز دل روز تاج رو برفراز دل حالا اینجا میگه که خداوند خواست که در این لحظه چین فرنگیسینا از دل افراسی بیرون بره چنان که روشن جهان آفرین از او توب شد جنگ و بیداخت و کیین روانمثل خوون زیاقش به درد بر برلب یکی باعد سرد پشیمان شد از بد که خود کرده بود دم از شهر توران هم برآورده بود. به دو گفت من زین نوامت آمد بسی سخن ها شنید دستم از هر کسی قبلا گفته بودن توی داستانم گفت که کسی پیدا میشه چنین میکنه چرا حکانان پدر من در میار رو آخرش همیندارم میشه از زی آاقش که میگیره میکشش ولی میگه من اینه رو شنیدم اونو چیکار کنم نگرانه بدو گفت من زین معامد بسی سخونها شنیدستم از هر کسی کراح با جنگ است از اون روزگار همه یاد دارم از آموزگار که از تخمه تو رو از کیقباب که شاخ سر برزند بانجاب جهان راقی مهروی آید نیاز همه شهر توران برندش نماز. کنون بودنی هرچه بایست بود ندارد غم و سود. مداری درش بگه این جنیزیش نداری این مردم بگوارش بدوی چپونی کسی که این اصلا چوپون بار بیاد بچه چپون بار بیاد مدار ای درش در میان گروه به نزد شبانان تا دستش بکوب بدان تا ندامد که من خود کیم به دیشان سپردزه بعد چیم نه آموزدش کس خرد با نجاب نه از این کارو که دار یا. بگفتن چه یاد آورده شد این سخان همین نوح مردین سال کهون چه سازی تو چاره به دست تو نیست دراز است ماه اورمزد یکی است اینو خود دکتر خالهودیام تایید کرده نفهمیدم که اورمزد یکی است چیه بنده هم الان نمیتونم دار. باید فکر کنم تا شاید بفهمم چیه شایدم نفهمم شاید اینجا مثلا کلمات عوض شده باشه بعد فکر کنم و چنین فرصتی نیست این به طلم مهم هم این اون که بد بینی از روز به نیکی هم او با آموزگار میگه که اگر بعد از روزگار می بعد خوب با هم داره یعنی این همه بدی به سیاهاش اینا گذشت ولی حالا دنیا رو به تیخص داره و یه وسائلی برنی گیزه که با همه این پیش که میکنن بالاخره برسه اون سرنش درشه. بیا آمد به در پهلوان شپمان همه نیت اوش زبان و گمان جهان آفرین را نیایش کرد به شاه جهان ستایش کرد فرندیشه بود تا به عیبان رسید کتاب بر یعنی میوه رنجش چاید پدید شوانان کوه قلا را بخاند از آن خرد چندی ها براند که این را بدارید چون جان پاک نباید که بیند برا باد و خاک یعنی خیلی عزیز میگه نباید که تنگ روزگار گرد دیده و, و دلکن خواستداد میگه اگر چشم بیاد دل شمارم خواست باید بهش بدیم چیز نباشه شبان را ببخشید بسیار چیز یکی جایه با اون فرستاد نیست. یعنی فرستاد پیش شب چون چاره ندانشید که هم به احساسی رو ایجرا کنه ولی سایلی فراهم کرد این بتون اونجا چیزی بشه بر این نیز بگش چندی سپه به آواز از این هیچ نکشاب چه چه شد هفت سال سر فراز؟ هنر با نجادش همی گفت راست ز چوبی کمان کرد و از روده زه. زهر زهر سو برفتن زهر را گره عبی پر رو پیکان یکی تیر کرد من شهر دادم تیر رو که چند جز داره یه چوب پسطش داره پیکان مختیز آهن یا بولاد می ساختن به صورتهای مختلف که برای فرو رفتنه و پرم می زشتن تش برای اینکه مثل دومت هواقی مای که او هدایت می به این, این طرف اون طرف پرم تیر رو مستقیم ببرید ولی میگه که تیر شد بیپر و پیکان تا یه یک چوب رو برداشت تیر کرد بیپر و پیکانی که تیر کرد به که نق تیر کرد چون ده سال شد کشت گردیست و ترک به خرس و گراز آمد و زخم گرد زخم یعنی ضربه بزنه به گرد اوزان جا شد به شیر و پلنگ بعد رفت سراغ شیر و پلنگ همان چوب خم میده و ساز جنگ یه وسیله جنگ چون همان چوب خمیده بود چون تا بر آمد روزگار نیامد به فرمان پروردگار شبان اندر آمد ز کوه و زدشت به نالیت و نزدیک پیران گذشت که من این سرافراز شیر یله سوی پهلوان آمدم با گله همین که از آهون و خست بر شیر و جنگ پلنگان نجست کنون نزد او جنگ شیر دمان همان است و نخجیر آهو همان آمد به ناراحتی بچه رو سپرده بودن بهش این می میره تو دهنه شیر گفتم چکار کنم من نمیدونم چکار بکنم این بچه اول آووشه تاریک نه حالا میره سراغ شیر و میترسیده چون به او سپرده شده بوده کنون نزد او جنگ شیر دمان همان است و نخجیر آهو همان نباید نباید یعنی مبادا نباید که آید به دو بعد گزن مناویزه می پهلوان بوله چه بشنید پیران بخندید و گفت نه نجات و هنر در نهوف نشاسته از بار باره باوری دغ کش یا از بر شیک خرشی فش باره دستکش کش یعنی باره اسب رام که حاضر برای زین بفرمو تا پیش او شد جوان نگه کرد بالا به او پهلوان برافکند پیران بره شیرزاد بیا اومد ابردست او بوه داد باز اینجا بر شیرزاد و دطور حالا الان سوال گذاشته یعنی نفهمید نفهمیده که چیه؟ ولی من خیال میکنم حالا برفکند شده بوده برفکن پیران بر شیرزاد یعنی پیران خود چه رسون به پیش ش زاده که مثل زاده شیر بود شیردل بودیم مراد از ظاهه اینجا به نظر من کیخص خسروه برافکندم یعنی از و تا پیش تا پیش کیخص رو می آمد دست او و باکشم هم نشون همینه که می گرسید دست بچه رو بوسید نگه که از پیران بدان فر روچه روخش گشت پر آق و دل قرزمه. <تصفح> به بردر گرفتش زمانی دراز همی گفت از او با دل پاک راز به دو گفت که ای رو به پاک دید به تو باب رحشنده به زمین از کسی که ندامت همین جز از مهربانت نخواند همین میگه که معلوم تو برای قابشایی شدی برای این کسی تو رو نشناسه به تو مهر داره و میاد به تو مهربانی میکنه به دو گفت که ای خسرو ای نام دار شمرده خوبی بسی روزگار شبانزاده ای را چون این برکنار نوازی و می نیاید آر پیران صدر ازن بود نه خستازیه بوده این میادیگه ای که بزرگوار جناب پیران تو آرد نمیاد که بچه چوپونی رو اینجوری به شنبت بکنی دست شو به اوسینا را دل برو بسوز، بر بسود به آتش رو برده به دو گفت که یادگارمهان پسندیده و ناسه برده جهان شبان نیست از بوغره تو کسی وزین داستان هست دامن فضی شدی نیست من میدونم به س تو. جوان هست بالای خواست بلند همان جامعه خست آرای خواست. به ایمان خوآمید با او به هم روانست برث یاغشت دوجمع همین پروورامیدش ان اندر کنار به دور شاقمان بود و به روز گار. از او دور شد خرد و آرام ها بران کودک از بینافراسی ها. از ترس این افراسیات مبا و ذریم این بچه برتونونه همیشه گهران بود. این از که بالاخره افراسیاب میخواد رو پسر سیابش رو پسر فرنگیز رو میخواد مخواد ببینید برای این نیزبک در چند به مخزن درون داشت از شاهنه شبی تیره هنگام آرام خواب کس آمد نزدیک افراسیاب بدان تیرگی پهلوان را بخوان گذشته سخونها فرافاند براند که بیشه فت همه شب دلم به پیچیدو افراسیاب که زندیشه یه همیشه دلم دم شب دلم بپیشید و از خم همی برسلم از این کودکی که از سیاهش رسید تو گفتی مرا روز شد نافدید نویره فریدون شبان پربرد، برد زراق بلندین این که اندر از او گر نوشته به من بر بدیست نگردد به پرهیست کان ایزدیست میگه اینکه که درست نیست که نویره فریدون رو چوبون ببره تحبیت کنه و هر حال اگر هم بدی به من میرسه این پریز کردن ازش بی برای اینکه این کار است و میشه البته این رو میکرد که بیان که خصوص را بین بین نای آافه سر جززیله آب کنه از او گرد نوشته به من به من منبد پدیست نگردد به پریز یعنی با پریز عوض نمیشه کان ایزدی است چ کار گذشته نیارت به یاد زیاد شاد و مان نیز باشیم شاد میگه اگر گذشته شد به یاد نیاره ندونه که غذا چی بوده ما حرفی نداریم او هیس خوی بد آرد سان پدر سر باید برید اگر با. بدو گفت پیران که ای شهریار تو را خود نباید کس آموزگار، یکی کودکی خرد چون بیهوشان کار گذشته چه دارد نشان تو این خود میندیش و بد را مکوش چه گفتان خیرتمنده گوهر بروش که پروردگار از پدر برتر است اگر زاد را بر مادر است یکی که اون خرطمن گفت که پروردگار اینجا منیه پرورش دهنده هست یکی پرورش دهنده از پدر پنیم تره که بچه همراه مادرش باشه یعنی پدر بالا سرش نباشه معنی بسن که چوبونه اون که چی دارن این یاد بدن دوستان چنونی لابود یاد گرفته که چیزیه که نیست نخستین به پیمان مرا شاد کن به سوگند شاهان یکی یاد کن فریدون به ماه و به تخت و کلاه همین داشتی راستی را نگاه طور کش تخت و عربند بود به دادار گیهانش سوگند بود یعنی قسم به خودم بخودم در دا نگفت داشتن نیا زابتشم را زابتشم هم یکی از اجدادشون نیا زابتشم را به دهیم و زور به دادار و هرمزد و کیمان و هور به اینا قسم میخوردم تو قسم بخور که ببین بچه آزاری نمیرسونی من بیارم سه پیرانچو بشنید افراسیاب سر مرد سنگی برام خواب یکی سخت سوگند شاهان بخرد به روز سفید و شب لاجورد بدان دادگرد این جهان آفرید سفه ردد و دام و جان آفرید که ناید بر این کودک از من ستنم نه هرگز بر او برتن تیز دم گفتم که این استعدادی نداره هوچی نداره چیزی نیست بچی بیشوریه من قسم میخوره که من چیزش نمی کنم زمین را ببوسید پیران و گفت که ای داد کرد شاه بیار رو تو به روی زمین بر چه تو شاه نیست به خوبی روحت بر فلک ما نیست به نیتی خیرت رهنمای تو با زمین و زمان خاک پای تو باد. فصل بعدی این است که پیران میاد به که رو یه تعلیماتی میده شرف راسی ها کردی این طور بگو این طور بشنو و بعدم هم او رو میبریم شرف راسی به نزدیک که خسرو آمد دمان بروخ عرقوان و به دل شادمان به دو گفت که از دل خرد دوب کن اقلا بسید دوب از اینجا که میری قریت کار بکره به دو گفت که از دل خرد دور بود. چون راز ما پاسخش سور کن من رو پیش او جست به بیگان بگیر مگر دان زبان جست به بیگان بگیر مگر بیشگونه به گرد خرد یک امروز بر تو مگر بگسرد مگر این شاید به سر نهادش کلاهی کیان به بستش کیانی کمر برنیان یکی باره کامزن پاک نفس بر او برنشستان گب پاک نفس بی بیامد به درگاه افراسیاب جهانی بر او دیده کرده برا روها رو بر آمد که بود شای را آمد نواین یکی پیشگاه همی رد پیشندرون چاه گرد سپهده پیران برا پیش برد بی رد در اون برد بیامد به نزدیک افراسیاب نیارا را رخ از شرم اونو شد برا خجالت کشید از بچه پدرش کشته بود بودان پس نگه کرد و خیره ما وفا را بخوند و جفا را براند یعنی مردی باز چیده دیگه سرنوشت به خاطر کارید درست کنه درست میکنیم بدان خطروبیال و آن چنگ اوی بدان رفتن و شاخ و اورنگ اوی زمانی نگه کرد و او را بدید همی گشت رنگ روخش نافدید برنگت همین بود که باید از خیلی برشت که تن پهلبان گشت لرزان چو بیت سه که کس رو آمد دلش نامید سه درد دلشیش نکشا چه زمانه به دلشند در آبر مید به دو گفت که نورسید رسیده جوان چه آگاهی از درز روز و شبان برای گوزفندان چه کردی همین زمین را چگونه سه پردی همین چون این داد پاسخ که نخچیر نیست. مرا خود کمان و زر و تیر نیست از این, این بپرسید بازش از آموزگار بد و, و از گردش روزگار به دو گفت جایی که باشد پلنگ به در داره مرد و تیزچنگ سدیگرد بپرسیدش از مام و باب از ایران و از شهر و از خرد و خواب چون این داد پاسخ که در رنده شیر نیارد سگ کارزاری به زیر. دخندید خست روز گفتار اوی او سروی پهلوان سپه کرد روی به دو گفت که این دل ندارد به جای دل مرکز خیرت دیاب کردن هستا دلش به جانی است که حالا میگی مغزش تکن خورده <تصفيق> به دو گفت که این دل ندارد به جای زستر پرسمش پاسخ آرد زبای نیا یا تمانا بد و نیک از او. نظیم بود مردم کینه‌جوی میگه این نشان مردم کینه جو رو نداره شو این را به خوبی به مادر سپار به دست یکی مرد بغیزگار گوشی کنش سوی سیاوش گرد مگر بد آموز را هیچ که میگه مواظب باشه کسی بدآموزی نکنه یعنی بگی که دروغ نمینم فلان بکن بسته به سیاوش گرد بده هر چه بوعد ز گنج و درمز اصل و فرستنده و میشه کم. بده بره دست مادرش فقط مواظب باش که تعلیمات بد بهش و پور کافی هم در اختیارشون که اینا بتونن زندگیشون را ادامنید سه بحبت بروی کرد لختی شتا زود قرون آمد از پیش افراسی ها خیش آمد افروخته خورامان و چشم بدی دوخته همی گفت که از دابگر کردگار درختی لا آمد جهان را به بار چیزه چیزی غریبی است که این پیران به دلیل اینکه موجب مرگ سیاوش شده که البته هیچ نظر بدی تبع نداشته وقتی می گفته که میگفت که افراسیاب به تو بد نمی‌کنه اینا هیچ سوء نداشته نداشتن حقیقتاً بوده که او ویزادیس و قصد جفا کردن و قصد بد کردن هم به سیاوش نداشته و پیران هم ذهنش متوجه نبود که ممکنه یه حسدی کسی رشت ببره و این وسط بیاد و ذهن اینا رو مشروب کنه اما به هر حال یه مقداری اگر یادتون باشه در مورد کار گفتگویی که پیران با افراسیاب داره اونجا افراسیاب میگه آقا من شنیدم که بچه شیره نه رو نواد فرورش داد بچه دشمنه این مال ایرانه منم چیه چیه و پیران هم میگه نه این خیلی خوبه این آدم خوبیه چنین جنانی که هم بوده و قصدش این بوده که راهی برای اینکه این, این مفرری از دست پدرش و گرفتاریا پیدا کنه میخواسته به وجود بیاد افراسیاب هم, هم از اون طرف درست آین ملکداری رو میدیده و این اصولی بوده که بهش گفته بودن باید رعایت میکرده و هر حال این ماجره که اتفاق میفته هیچ کدوم اینا توجه نداشتن که سرنوشت سیاهش اینجا به دست پیران و به دست افراسی تنها که نیست اگه بود خوب درست میشد ولی اینجا این آمده این شاهزاده زیبای دارای فرعی ایزدیه بسیار بسیار به که حالا جذبه داره و همه به طرف اون کشیده میشن و همه دوستش میدارن در یه مملکتی که همه مردم دشمن هستن ممکنه یه کسانی به اون رعش ببرن و نتونن او رو در اونجا ببینن نتونن مقام موقع او رو تحمل بکنن و در کار کارو خراب بکنن یعنی هیچ فکر اینکه اینا این سیاوش در چه محیطی میاد در چه سرزمینی میاد با چه کسانی روبرو میشه نداشتن پیراه فکر کرد این خوب سیاوش که بچه‌ش که دیگه هیچ جور بدی ازش اصلا نمیاد به آدم با شرفی که کار تحت و گل کنه برای چهار تا بی گناه و باشه بیاد اینجا اون که بدی نمیکنه افراسی قصد خصد بدی کردن نداره بنابراین درست میشه و بافل از اون عوامل دیگه که آدم در. و همین دید بعدش ناخودآگاه احساس گناه میده و فکر میکنید که خب بالاخره من سی کشتن دادم دیگه اضراح کرد اومده بود راه میخواست اینجا ب بره. من مجب شدم. که سیاقش اینجا بمونه و بعد این بلا به سرش بیاد و با اینکه باشم عهد و پیمان کردم موقعی هم که داشتم میکشتنش من نبودم که اقلم جلوه رو بگیرم یه چیزی بکنم اینه که احساس گناه کرده به همین دلیل ناآگاه کوشش میکنه که این کیخسرو رو که از نظر توران به هر حال دشمنه و دشمن خطرناکی هم هست و پیران صدرزم افراسی افراسیاب نفر اول بعد از شاه کل تورانه با این حال به دلیل اون احساس گناهی که میکرده کوشش میکنه که این رو هرچقدر میتونونه زیر حمایت خودش قرار بین پرورش بده تا جایی که این به عرضه برسه و کاری که قرار بکنه بدون اینکه باز الان هم همونطور که موقعی که سیاهش رو توصیه می کرد و احرا اودم سوء نیتی نداشت در این موردم که از کی خصرو رو حمایت میکنه ساسر اخلاقش و روشش روش انسانیز و خود از مهره اما نتیجهش به دلیل خیال می‌کنم به دلیل همون احساس گناهی که می‌کرده نتیجهش برای مملکت توران بعد و در حقیقت در تمام این موارد داره به نفعه داشته به نفعه ایران گام برمی‌داشته بتونه که توجه بود و بالاخره که خسرو رو نگه می‌داره اینقدر که خسرو با عرصه می‌رسه بعد بعد در داستان‌های دیگر می‌گوید که کابوس که پیک شده بود خیلی وچش هم کشته شده بود گیب رو میفرسته به تورال و او هفت سال در تووران میگرده تا پسر سیاهاش پیدا کنه بیاره که به جای کابوس به تخت بنشینه و انتقام کنه. افراسی ها بگیرن و گیب میاد و این کارو میکنه و او داستان دیگری روزع این داستان ما نیست. این داستان هم تقریبا تموم میشه و هر حال میگه که بعد از اینکه نجات داد کخصص رو و برد رو روححت با افراسی ها. و افراسیاب رو در حرکت خانه کرد به اینکه که این بچه چیزی نمیفهمه، چیزی سرش نمیشه، به قبول افراسیاب دل ندارد به جای بعدم یه اونجه یه اعتباری هم گرفت که اینا زندگی راحتی داشته باشن با خوشحالی آمد بیرون سپه وقت اون که از لختی شتاق قرون آمد از پیش افراسیاب به ایوان خیش آمد افروخته کرامان و چشم بدی دوخته همی گفت که از کردگار درختی نو آمد جهان را به بار در گنج ها و باز کرد سهر سه ای را ساز کرد یعنی مجهزش کرد سه دینار و و تیغ و گوهر سه اصف و سلیح و کلاه و کمر هم تختو، از تخت و از بدره ها یه درم بدره یعنی کیساهایی که توش پرمیزشتن تو سه گستردنی ها و از بیش و کم همه پیش قیخست را آورد زود به داد و دهش آفرین بر گزید. گوسی کردشان سوی هم اون سی‌آوش کرد. چون پیش خودش متوام فرانگیز پیش پیران بود، پسرش هم که پیش چوپان میگه که به دلشون برد. گوسی کردشان سوی هم چهارستان کجا گشته بود باز چون خارستان. میگه میگن شهرستانی که دیگه مثل خارستان یعنی خراب شده بود، فرستاد اونجا، فریدیسو کیخسرو اونجا رسید، بس این مرد هر سو پدید. به دیده یک سرزمین یعنی زنینو با چشمشون راه رفتن یعنی احترام گذشتن اززت گذشتن کوچکی کردن زبان دد و دام پرزاخرین که از آن بیخ برکنده فرخت رخت از این گونه شاخی برآورد سر زشاه جهان چشم باید دو باد مردم اون بود روان سیاه بر از نور باد همه خاک آن شارستان شاد گشت گیا بر چمن سر و آزاد گشت از خاکی که خون سیاهوش بخرد و اپرنده آمد ای که سبز نار، نگاریده بر برگ ها چهره اوی همین بوی مشک آمد از مهر اوی به ای به بسان باران بودی پلستشکه سوژ واران بودی میگه از خاک سیاهوش و از خون سیاهوش گیاهی در که همیشه سبز بود و میدونیم که یه گیاهی هست که میگن پر سیاهوشان من کشم یزن ماهیده به فرمزه و گویا این که فردوسی این جمیکه که این گیاه که در محطت میشه سبز که یعنی خزان نداشت و سوگباران باران رفتن اونجا و به یاد سیاوهاش پرستش می کردن مرحوم مهداد بحار از اصطلاح فیلید مهم یا چناسی و دوران های قبل از اسلام اینا معتقد بود که سیاوهاش به اصطلاح سمبول در اینا صورت تطبیق شده تموزه که تموزی که از خدایان بابلی و آشوری بود که خدای شهید چونده بود یه کسی رو بند داشتن به نام خدای تموز بعد این مدتی بعد اونو می‌کشتن و خونش رو میریختن در کیسار برای اینکه به کیسارها برکت بده در دورانی که کشاورز شده بودند و اون وقت بعد چون این بیگناه کشته شده بود براش سوغاری می‌کردن و سینه می‌زدن و مراسم عذابداری به جام می آوردن و همه این کارا و ما می‌دونیم که عین این, این کارها برای سیابوش می‌کردن و الان مراسم محرم که ما داریم درسته که خب ما چیز امام حسین نگه میداریم و در حقیقتم امام حسین وجود قطعی خارجی تاریخی داشته در روز معینم که دهان محرم سال 62 اجری بوده و معادل 16 آبان ماه بوده این کشته شده اینا همه درسته اما این رو همه حتی اهل سنت هم او رو نواده پیغمبر میدونسن این عملم بسیار زشت میدونسن بسیار زشت میدونن در تمام تاریخام چه شیعه چه سنی همه تکذیب کردن گفتن بسیار کار بدی که از این او نواده پیغمبر بود که ادعای هنوز زنده بودن که دیده بودن سوای دوشه پیغمبره اینا همه درست اما این مراسم و آداب و ترتیبی که ما دلیم حسین زنیو زنجیر زنیو قمی زنیو میذارن این مسائل رو هیچ جا جز کشور ایران انجام نمیده و این نشونه این است که این مراسم و این ترتیبات سابقه مفصل باید داشته باشیم که بعدم در تاریخ بخارای سندی هست که اونجا میگوید که میان مقان و رو در یه روزهای معینی سوق سیاهوش رو برقام میکنن و نوخه میخونن روشید میکنن و این رو گریستن مقان گوگم و این مراسم این که زیادت از سه هزار سال است که برقام شد حالا سه هزار سال ما حت اونو کار نداریم ولی لاعقل محصول از سه هزار که مدت دراز است که این برفاه داشته میشه این سیاوش رو بعد تطویق میکنن با اون خدای تموز و میگن اوس یعنی مهداد میگه اوست بعد میگه که این حاجی فیروز هم که شبیه ایت میان اونم نماد سمبول سیاوشه و سیاه کردن صورت چند تون اینا سیاه که نبود صورت سیاه میکنه یعنی کسانی نیستن که سیاه باشن این سیاه کردن صورت هم نشونه این است که این از دنیا دیگر از دنیا بعد از مرگ برمیگرده و بعدش تقامت درده این به این دلیل باست این اقاید مرداد بحاره و این مراسم بوده تا خانم سیمین دانشور که دکتر فارسی است و داستان نویسه و داستان همون نوشته، نویشته این داستان محفرش داستان بوده اونم صوبشون یعنی سیاه و توی این یه صحنی رو نقل می‌کنه که میگه که عشایر بعد از برداشت محصول در مهرماه سیاقش رو ورقان کردن و این خانوم خودش اینو ندیده ولی ادای پیر داشته که اون دایه اینا رو گفته براش و اون به خاطر سپرده بوده این صحنه رو توی اون چی نوشته که این مراسم مثلا تا خانوم همسر نبنده است مثلا این مراسم صد, پیش, صد و بیت سال پیش 120 سال پیش برگزار میشه همین در اون مراسم سوگ سیاوش این است که ریشه خیلی قدیمی و تاریخ دشتی و هرحال میگه که اون گیاهی که رویید به دیمه به سان بحاران بودی پرستشگاه سود بودی کسی که سیاه به واید گریست به زیر درخت بلندش به زیریست میرفتن زیر اون گیاه زیر اون درخت و اونجا به سودی سیاوش گریه میکنه دیگه بعد از این نصیحت است و همون چیزهای عرفانی که معمولا داره می گچولینا دردور این گنده پیر یعنی جهان ستانت ز فرزند پستان شیر چو پیوسته شد مهر دل بر جهان به خاک اندر این جهان از او تو جز از شادمانی مجهول به باغ جهان برگ اندر مجهول یه همیشه شاد باش برای اینکه ورگ بهنا سراغت خواهد هیچ اگر تاج داری و اگر کف تنگ نبینم همین روزگار دران جای ایست نیست مرنجان روان کین سرای تو نیست جز از تنگ تا بود. جای تو نیست یکی را برکش برکشت تا به ما فراز آورت دانس پس نهادن نباید یه نمیخواد ذخیره پانی برای چا نهادن نباید بخوردن نشین با امید گنج جهان آفرین زخون سیاه بشت گذاشتم به با آوردن شهر تو سوران زنین دیگه حالا میپردم به داستان آوردن کیخست رو از توران که دیگه داستان جداگانه است و یه محتسری ازش گفتم انشاءالله باید وقت دیگری دربارش بارش گفته بویشه انشاءالله خیلی خیلی همان همانگانی که در آغاز گفتم این هفته همزمان با سالگرده در گذشته استاد زندیاد پرویز ناطل خانلریست شهری بر ما همچنین سالگرد تولد استاد محمد جعفر محجوب نیز هست که هفته گذشته برنامه بیاد رفتگان و دوستداران را به همین مناسبت به بزرگداشت یادو اختصاص دادیم در برنامه این روز به مناسبت همزمانی سالگرد در گذشته استاد خانلری و تولد استاد محجوب شعری از استاد پرویز خانلری را با صدای استاد محجوب می شعر معروف اقاب خانلری را که استاد آن را به صادق هدایت تقدیم کرده و مضمون آن را نیز از داستانی از پشکین شاعر بزرگ روس برگرفته است البته دکتر محجوب این شعر را از بر و از حافظه میخواند که با توجه به حافظه آور استاد نباید از آن چندان هم تعجب کنیم شعر اقاب خانلری را با صدای استاد محجوب میشنوید آفتابش به لبست پاند باید از هستی دل بردی کشور کشورت دیگر چاره مرگ نکاری حقیق زنده را دل نشود از جان سیر صغراه زفه چاره کار گشت بر باد سب و سیر گله کاهنگ چاد داشته داشت ناگه از وحشت پر بلبله گرد وان شبان دیم زده دلنگران صدفه بره نوزار دواند شب در دامن کاری ها مارد کیچید و بستراخد آهو استاد و نگه کرد و رمید دهد به اشرافت به دیگه سیاد سر دیگه دید سید را فارق و آزاد دید. دید هر روزه به چنگ آمد روز مگر آن روز که سیاد نبود آشیان داشت در آن دامن دشت زاقه زشت و بدندال مطلش سنگ ها از کفت اسلام کرده جانز ست دون بلا در برده سال عزیز ده اخوند شما شکم آکنده زگند و مرداد پرستر شاف برا دید اغاد زاسمان خونج زمین شد به شفا گفت که این بیده زما بسیداد با تو امروز مرا کار مشکلی دار اگر بکشایی بکنم هر چطور تو گفت ما بنده درگاه تویی خاکه هستیم هوا تویی بنده آماده بگو فرمان چیست جان به تو سفارم جان چیست دل تو در خدمت تو شاب کنم ننگم آولت که جان یاد کنم این همه گفت ولی با دل پیش گفته بود این دیگه این ستم کار قوی پنجه کنون از نیاز است. چنین زبون بیش و زبون ناگه تو شود پاک شد یاد در دل مرا عمر هبابیست مرا راست استیم که مرا لیک هر لیفترواد زمان هر من گذشتم به شتاب از در و دشت به شتاب ایام از من به گذشت گرچه از عمر دل سیری نیست مرگ و تدلیری نیست پدرم از پدر خیش شنید که یکی زاق یه با دو سفیله به هنگام شکار صد از چنگش کرده پدرم نیز به تو دست خیاب تا به منزلگه جاوید شکار به این هنگام دم بازپسین چون تو پرشاف شدی جاوگزین از, از در حسرت با من فرمود که همان زاق پلید است بود. عمر من نیز به یک ماه یک گل از قدگل تو نشکتن چیست سرماه یک این عمرت راست راز, راز اینجاست تو بکشا میگن زاگ گفتن تو در این تدبیری عهد کن تا سخنم بپذیری عمرتان گرک پذیر از کم دیگری را چه بند. این به هرگز از چرح نیایی پروز آفر از این همه پرواز چه سود پدر من که پس از سی سد و هند کانه هم در هدو دانش و پند بارها گفت که بر چرح اسیر بادها را فراوان دارد بادها که از دبر خاک رزن سنو جان را نرسان هرچه از باد شدید بالاتر باد را پیش گذن را سرد خابدان جاک و بروگ اخلاک آیت مرگ شود به حالا ما از آن سال بسیار خیلی که از بلندی را برکار زام را میل کند دل به نشید بسیارش از آن گشد دیگر این حاسیت مردار عمر مردار قرآن بسیار گند مردار به این درمان داری رنجت و زن آسان خیز و زنگیش ره چر مپو تهمه خیز بر مجو مجود ناوزان جاویه این سخت نکود به هزان پنج حیات و لب جود من که صد نیکو نیکودانم راه هر برزن و هر سیدانم کاغنم در پسط باقی دارم و اندران دوشه را دارم کاغن گفترده الوامی هست پردنی ها به پرازان از آن زاق چنین داد سراغ بودن در پس با. بود بد رفته از آن تا بود معدن پشت مغاو زنبود نفتش کشته بلاوی دلو جان سوزش و دو از آن آن دو همراه رسیدن از راه زاق بر صفته خود کرد نگاه گفت هامی که چنین الوان است لانقه محظر این مهمان می کنم شد که در بیش نیم خجل از ماه هزر خیش نیم گفت و بمشست و بخورد از آن گند کافی آموزد از این مهمان هم عمر در عوج فرق برده به سر دم زده در نفس باغد سر عب راویده به زیر پرخیش. ای اوان را و همه پروان بر پیش بارها ها اومد شاد سفر بر شت ب فلک تا زفر سیله کف و تزر و طی تازه و گرد شده تهمه او اینک افتاده بر این لاغ شده بود چند باید از ذاغ بیا اون گندش دلوجان تاز بود هاام سیمایه ق یا. دلش از نفرت و ریچ گید شد وقتنی دیده یاد پیش که برام اوج سفر هست پیروزی و زیباهی و میتر فر و آزازی و فت و زفر هست نفس فرغم باد سهر هست دیده بک شد به هر سونگری دید گردش اثرید اینها نید آنچه بود از همه سو وحشت و نفرت و بیزاغری بال برهم زد و برچه دار دو خیلیار ببخشا مرد سالها باغ شد بدین عشق بنا تو و مردار تو و امردران من نیم در پر این نصاب جند مردار تو را مردم در عمر فلک هم باید مرد عمر در جنگ سر نتون بود شهر شاه هوا او زاق را دید در این مندشه گه بالا شده بالا خست راست با مهر فلک هم سر شد. لحظه چند باریم دو خواه بود نو با دکتر جفر محجوب و استاد پرویزه خانلری بودیم در برنامه شعر شاعران. استاد خانلری در سال 1292 به دنیا آمد و در شهریور ماه سال 1369 در تهران درگذشت. یادش گرامی باد. استاد پرویزه ناتنی خانلری پژوهشگر، ادیب، نویسنده و مترجم و پدید آورنده دهها کتاب و مقاله معتبر در زمینه ادبیات و فرهنگ و زبان فارسی و سردبیر مجله سخن در سال 1292 1992 به دنیا آمد و روز اول شهریور 1369 در تهران درگذشت. در برنامه امروز به یاد رفتگان و یاد او را گرامی میداریم. یاد رفتگان و دوست یاد و دریقه استاد پرویز ناطل خانلری را با شعر عقاب او آغاز می شعری که همراه با مجله سخن، بنیاد فرهنگ ایران و مجموعه تاریخ زبان فارسی و دستور زبان فارسی با نام دکتر پرویز خانلری عجین است خانلری شعر اقاب را به صادق هدایت هدیه کرده است خود او سبب این کار را چنین توضیح میدهد این شعر که به صادق هدایت اعداد شده است و اینش که بلیه اشخاصی مختلف،, مختلف،, مختلف،, مختلف، بودن اما افتر در که روزی که من این کسی که سنی درد در و اونقدر دو کرد او که با بگیم یه در چاک کنند و آن رفتیم به اداره مجردی محروم وقتی که روزی که من این چیه رو داریم چاپو کنند و گوید که تاییزه چمارا چاپ شده من شد در ایست نسخی هم کرا جفار به صرف رو من این که تقدیم شده از فساد غیر این مثلا اول دفعه بود این به اول دفعه هم که آق سال بزید و گاه باشد که عمرش از اینی بگذرد اقاب را سال آن سی بیش نباشد چند ایتی از شعر بلند اقاب با صدای استاد یه yes, سمنات دلو جان اقاب چو از او دور شرعیام شباب ای که بانجام بنجام رسید آفتاب از به لبه بام رسید ید از هستی دل برگیرد رحصه کشور دیگر است. خواست تا چاره نامتاک کند داروی و درکار کند صبح گاهی در پی چاره کار گشت و باد ثبوت سیل سواز که هنگ چرا دارد به درشت ناگرد وقتد پر ولبلگست ول اون شب هم دل نگران و تی بره نوزاد دبند کبت در دامن خواهی آبی ماد پیتید و به سورا خورید آبو استاد و نگه کرد و را خط بباری بکشید یک سیاد تایی دیگر داشت سید را پاره و آزاد بذاشت چاره مد نکاری تغییر این را دل نشود از جان جانسید چه هر به چند آمد مگرون مگر اون روز تو در بود در و بدندام و پلست. سنگ ها از کفی که جان به صد بونه بلا در برده. سال ها زیسته افزند شمار شکم از سر شاق و را دید بغا زمین شد بشه تا. گفت تیدیده که ما بس می داد. با تو روز مرا کار افتاد مشتری دارم اگر بودش آقایی بکنم حق تو می فرمایی گفت ما بندهی در تو این، تا که هستیم هوا خواه تویم پند بنده آماده بگو فرماییی جان به راه تو تفارم کار محجوب استاد بزرگ دیگر عدهای ایران چنین اقدام دارد. خانداری شاعر شاعر شعری که باید تاریخسری یا منتشر کرده بود. با عنوان این اگر هم یک شعر هم از او باقی مانده بود کافی بود که مرتکب شاعری او نشون. تو تو حرف زینه تله خانداری انتشار مجله سخن را از سالهای 20 و زمانی که کمتر از 10 سال داشت آغاز کرد و آن را به مدت حدود چند سال تا زمانی انقلاب ادامه داد. خاطرات استاد را از زبان خود او در مجله سخن میشنه بکر ایجاز سخن از اینجا حاصل شد که جامعه اینسان که های دانی سرحالی مربانی داشتیم اونجا تصمیم گرفتن که مجله داشته و ارگان اونجا جمعیت و در اونجا به حال قسم و به که امتیاز روی بگیم دارمون به من هنوز سین هم کم بود چون تیز آزو می‌باشید بشته باشم دومد با بود و هم به اینجا ته اصف خدم نمی‌تونستم بگیرم با قرار با آقای دو دو که او افیازی بگیره ولی من شهر در باشم و به سال کار رو انجام بودم این‌طور گردیم و تا دو چهار شماره این‌طور آقای تا دو صفحه خیلی نوزم از دو بود که کارای راجع به نیران بکنم و طریقتا بیاد خودشو تضاره بکنم و افرادی با یمچ مجالی به جا جمهور نبود به اینجا چند جمهوره استفاده داد و اطباقا بخوردم اونجا به در اون دو دوست شدیم باید در مجله سخن و اهمیت آن در فرهنگ ما ایران سخنان استاد محمد جعفر مجید رو می‌شنویم که خود زمانی در این مجله قلم می‌زدند این کتابداری در آغاز همه کارهاش و در سرلوحه کارهاش باید مجلی سخن را عرض کنم 33 سال انتشار مجله سخن پایه‌گذارش 4 نفر بودند رضا جورجانی بود دکتر حسن شهید نورایی بود صادق رضایت بود و و خانداری آخرین این جماعت بود که از میان ما رفت مجلی سخن وقتی پیدا شد شباحت به هیچ مجله قبل از خودش نداشت و همواره دریجه ای از دنیای نوع رو به روی جوانان میگوشد یک دوبام این که کوشش داشت که در میان جوانان صاحب استعداد کسی که دست قلم داره یا اهل شعر، و استعدادی در دفتر آخمشه او تربیت بکنه به پرور آثارش در سخن منتشر کنه و به همین ترتیب در ظرف این سی چهار سال شاید دونست یا بیشتر شاعر و نویسنده پرورش داد از میون کسانی که اهل قلم هستن من میتونم اسم ببرم مثلا جمال میرسادهی یا بحرام سادهی که مرده اصروان شادباد و چند تا دیگه نویسندگان دیگه ادهی زیادی از اهل تحقیق بعضی از اهل شعر مثلا شعرهای دکتر مجددین میفخرایی که او هم در گذاشته اول بار در سخن معرفی شد و اصلا شعر امروز که بعضی میگن شعر نو و به نظر من شعر نو و نیمدار نداره شعر یا شعر هست یا نیست شعر امروز در حقیقت اود و نمودشو با اینکه آثاری داشته ولی واقعا از سخن شده و چند نسل کسانی بودند که اول با شروع کردن با خوندن مجله سخن خود بنده دانش آموزی ت دیرستان به دوره اول سخن منتشر شد و طببععا با علاقمندی ها میخوندم و بعد خودم به سمت نویسنده سخن مشغول کار شدم و خودم در اونجا بودم که دیدم شاگردانی که من تربیعت کردم اونها هم در سخن وارد کار شدن و این مجله مجلس بسیار مرتبری بود به نه که اگر کسی آساش در سخن انتشار پیدا می راه بود اونجا یک مطبوعات ایران، کتاب و مقاله و مجلات صدرجه‌ها کاملاً باز بود و اعتبارنامه بسیار محکمی در دستش این کار سخن بوده است که همچو ادامه داشت تقریباً تمام عمر خود برکت دکتر خواندری مستقر این کار شد و جزء محدود نشریاتی است که چاپ دهم شده است که می‌دونید و تا اونجایی که من خبر دارم یکی مجله بهار مال مرحوم احسان مرثی در پرمین که چاپ دهم شد اولی مجله کتاب دوگوم شد. دومین دو مجله مجله یادگار بود، سه‌مین مجله یغما بود و که با سخن با همزمان هم شروع شد. حقوقی مجله‌ی سخن محمد جفر محمود مهمترین آثار خانلری را چنین وارد می‌شمارد. برای دفتوم بسیار بزرگ دکتر خانلری در بنیاد فرهنگی ایران شون مدیر عامل گنجاد فرهنگ ایران بودن و سرمایه تحت اختیارشون بود برای انتشار کتاب‌های علمی و ادبی و چند نوع کتاب نوعی از کتاب‌های ایران شناسی و زبان‌های باستانی یه نوع کتاب از متون امثال این‌ها یه قسمت کتاب‌های تحقیقی و سایر مسائل حتی متون عکسی های درجه یک در حدود 300 عنوان کتاب رو دکتر خاندری در دوران تصدیش در بنیاد فرهنگ ایران انتشار داد اگر او در اون سمت نبود احتمال این بود که شاید ده تا از این کتاب ها هم انتشار پیدا نکنه به خصوص که بعضی از این کتاب ها کتاب های بود که تیراج زیاد نداشت ارزش علمی بسیار زیاد داشت ولی فروش نداشت که کتاب فروش بیاد و او رو منتشر بکنه و بنیاد فرهنگ کار کرد صدبومین کار بسیار بزرگ دکر خانلری تالیفه یعنی تعریفه دستگاهی بود که قرار بود فرهنگ تاریخی زبان فارسی رو تالیف بکنه فرهنگ تاریخی عبارت از این است که ما فرهنگی داشته باشیم که نشون بده که هر کلمه از کی وارد زبان شده و شاهد قدیم‌ترین استعمال اون کلمه هم در زبان بدیم به این ترتیب اگر این فرهنگی در دست داشته باشیم تمام کلمات زبان ما شناسنامه پیدا می‌کنند و تاریخ ورودشون به زبان پیدا میشه و این خب استفادهش که لازم نیست من در این باب توضیح بدم. این کارم یک جلدش رو منتشر کرد جلد دومش هم در دست انتشار بود و الان خبر ندارم که دنبال این کار گرفته شده یا نشده و هر حال یادداشت داشتاشت هست این ارتارسیان چهارمین کارش تعلیف تاریخ زبان فارسی در چهار جلد که کتاب بسیار محتوری است و مورد مراجعه دانشیان. و غیر از این ها مقالاتی ای که در سرمقاله هایی که در سخن نوشته مقاله هایی که نوشته، کتاب هایی که نوشته یکی از سرمعشق های بسیار مهم آموزش زبان فارسی است بسیار پاکیزه، بسیار زیبا، بسیار معصف و بسیار ساده و چنان که خودش میفرمود و من از زبانش رمیدم میفرمود که در این روش شاگرد مرحوم احمد بحمیار استاد در بزرشته دانشداته تمام این مطالب غیر از دو کار دیگر است، یکی این که خاندری از آنزگاری تا استادی سطح بالای دانشگاه تهران، تمام این مراتب رو به قدم سعی خودش پیمود و در همه جا استاد مبرز و درجه اولی بود و منده چه که به چشم خود دیدم و ناچارم اینجا گواهی کنم این است که شواهدی و مطالبی از او دیدم که برام پیش تردیدی باقی نمون که اوجود او استادان مسلم و درجه اول زبان عدد فارسی است علاوه از اینکه که سرشاری هم دارد که در شیعهاش آشکاره و تمام شاگردایی هایی که تردیت کرده در چه شاگرت هایی که در سر کلاس تردیت کرده و چه کسانی که بیرون از کلاس دست اونها رو گرفته و راهنمایی کرده و رو به کار تحقیق راهنمون شده تدریس روزنامه نگاری شاعری مدیریت پژوهش تعلیف و ترجمه و تصحیح و انتشار دهها کتاب و مقاله بخشی از زندگی پربار و پر افتخار خوانندری است نادر نادرپور، شاعر ارشمند فضای زندگی استاد خانلری را با جملاتی که کم از شعر ندارد می می‌گذارد و از خصوصیات انسانی و اخلاقی و از آثار و اهمیت استاد و جایگاه والای او در فرهنگ و ادب ایران می‌گوید در کوچه باغ می میان تجریش و زرگنده که کوه دوست نامش داده بودند خانه‌ای کوچک بود که پیشانی خجولش را در کوار سبز درختان می‌کوشاند و نسیم کوچال را که از بلندی‌ها به زیر می‌آمد در خود پناه و چشمان فراخ در هایش را از این آفتاب ظهر در زیر ابروان شاخه ها پنهان می کرد. این خانهی بود که خاندری در تابستان دور از هجوم گرما روی به دنجا می نهاد و کتاب و قلم را نیز به دنجا می بود خاندری در بزن آن اندوخته بود چرامتی کوشیده داشت که سروت درونیش تظاهر و یا تفاخر نمی‌ترد اما همه را بی‌دریغ در اختیار مخاطب یا مهمان می‌گذارد گرچه لحنش آمدن از آتفی شدن اجتناب می‌دربید هرگز از اطروفت خالی نمی‌شد از آن چه دربارش سخن می‌گفت اطلاع کامل داشد و هیچگاه از آنچه چه نمی دم نمی‌دارد روستی خانداری مانند چشمه‌ای که در نیان درختان باقچه‌اش می‌ آرام و زلال و بی صدا بود نقش همه ی عواطف را در خود می گرفت، اما سخنی بر لب نمی آورد. و در آنچه بر لب می آورد صادق بود به همین سبب اگر صفتی را در دیگری می و یا شعر و نوشته ای را نکوهش می کرد در پر اعتماد بود و شاعبه هیچ خوب و بغضی در آن راه نمی آورد. شعر خانلری همانند دوستی او و چشمه باقشه او شفاف و خاموش است. اما گاوی پرواز عقاب را در جرفای آسمان منحکس می کند عمر در عوج فلک برده به سر دم دمزده در نفس باد سهر عب را دیده به زیر پرخیش حیوان را همه فرمان برخیش و گاهی نیز افول روزها را در انتهای افق باز می نماید چون فروداید آفتاب خزان در پس برگهای پشمرده. یا از روزهای مرده کنم همه جان از ملال بسکرده اگر تدریج چهل ساله او را که از مدارس گیلان آغاز شده و به دانشگاه تهران انجامیده است به یک سونهی و تأسیساتی نظیر سازمان پیکار با بی و پژوهشکده پرهنگ ایران و مخصوصاً ماهنامه سخن را که در ظرف مدتی دیش از سی سال نه تنها بهترین مجله عدد جدید ایران بلکه یکی از مکاتل مهم شعر و نصر معاصر فارسی به شمار میرفت در همان صوب گذارین و در گستره پجوهش ها آثاری مانند تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان قزل وزن شعر فارسی، تاریخ زبان فارسی، زبانشناسی و زبان فارسی را با تسلیح داستان سمک ایار و مقابله چهارده روایت از دیوان حافظ بنامون ثبت کنیم و از مجموعه کتابهای درسی وی شامل دستور زبان فارسی تاریخ ایران پیش از اسلام تاریخ ایران بعد از اسلام و یک دوره منتخب شاهکارهای ادبیات فارسی شتابان بگذریم و ترجمه های کم نزیرش از قبیل چند نامد شاعری جوان دختر سروان نوراهب و به ویژه و ایزد رو پشت داریم تازه به قلمرو روی خلاقیت او میرسیم که نوشته چون هفتاب سخند و سروده مانند اغاغ را در بر گرفته. پس از انقلاب، انقلابیون قدر و مقام فرهنگی والای استاد را نشناختند به مقام و حیثیتش اهانت کردند و در حالی که پیر و بیمار بود لطمه های مادی و معنوی بسیار بر او روا داشتند سخنان نادر نادرپور به نوعی اعاده حیثیت است از اسات خانلری و دیگر بار تکرار این کلام مکرر که جایگاه فرهنگ فراتر از همه قرض هاست دیرم قرض چند سباهی چهره هنر را بپوشاند زندگی او که بخشی از اون نیز مایه اعتراضه خرده ایران بوده است، همانند آثارش به فرهنگ ایران سود رسنده است. زیرا اگر او سمتهایی را در مقامات رسمی و دولتی تذیروفته در صدب بوده است که از برکت آن سمتها مشتلات را از سر راه مسائی فرهنگی پیش بردارد و بر خدمات گرانبه هایش نه اینکه از احراز آن مقامات تسبه اعتباری اخسون کند و یا سروتی بیشتر گواه دوگانه مدعای من این است که اولا اگر او در رأس سازمان پیکار با بی یا وزارت آموزش و پرورش و نیز بنیاد فرهنگ ایران قرار نمی گرفت شاید هرگز معموران ثباد آموزی و یا سپاهیان دانش به روستاهای دوردست ایران قدم نمی گذاشتند و دوستداران کتاب به این همه نسخه های نایاب و تمیاب که زیر نظر او به چاپرسید دست نمی آن. چانیم شیوه معاش خانلری در دوران اشتغالات اداری بر این معنا دلالت داشت که تصدیه مقامات دولتی نه ذرهی از تونتنی ذات او پاسته و نه چیزی بر رفاه و تجمبل حیاتش هم است و این گواهی برهان آن است که اگر خانلری به سرچشمه قدرت نزدید شده نه به قصد خدمت بخیش بلکه برای خدمت خلق بیده است اگر روزی قبار اغراض سیاسی از گرداگرد نام خاندری فرومشیند آیندگان او را از یک سو در چنار وزیرانی چون امیر شیر نبائی و قائم مقام فراحانی خواهند نشانید و از دیگر سو با کسانی مانند دهخدا و ایرج و نیما و هدایت که بزرگترین دگرگونی ها را در ادب معاصر ایران تدیر برابر خواهند شد. چنین روزی دور نتواند و چنان که پیدا بزودی نام و سخن خاندری پس از غروب جسمش، همچون صبحی ثابت از آفاغ فرهنگ ایران با شکولی افزون تر برخواهد راست. اونا